دارم. اسماعیل بیک در سالهای نخست جنگ جهانی دوم صندوقدار یک شرکت بود. سه تا بچه و زنش و خود. مگر تأمین مخارج خانواده پنج نفره آسان است؟ آن هم در آن سالهای سختی. این شد که اتفاقی ناخوشایند مربوط به صندوق شرکت برایش پیش آمد. رئیس متوجه قضیه شد. اسمایل بیک را صدا زد. سد. از آنجا که رئیس مردی بداخلاق و خشن بود اسمایل بیک کم مانده بود زهره ترک شود با خودش می گفت حتما به پلیس و دادستانی تلفن کرده آنطور نبود که فکر می کرد رئیس که نه سال بود پیشش کار می کرد اولین بار بود که اینقدر ملایم و خندان شده بود بفرمایید بشینین اسمایل بیک اسمایل بیک در مبل روبروی میز رئیس مچاله شد رئیس شمرده شمرده حرف میزند اسماعیل بیک هر خوبی که از دستم برمیومد در عقل شما کوتاهی نکردم نه سالی که نون و نمکم میخورین زن و بچهتون روزگارشون روزگارشونو با پولی که از من میگیرین میگذرونند با حقوق ماهی هفتاد و پنج لیره توی شرکتم استخدام شدین حقوقتون رو زیاد کردم کردمش نود لیره دیگه بایست چیکار چطور تونستین؟ همچی کاری بکنین؟ با آدمی مثل من میشه همچی بیانصافی کرد؟ حرف های ملایم رئیس باعث شد اسمایل بیک امیدوار شود با خودش گفت انگار میخواد دوستیم و ببخشه خودش را توی مبل خوب مچاله کرد و در حالی که نگاهش را به کفش های پارهش دوخته بود گفت حق با شما سخور من یه بیوجدانی کردم، عوضای مالیم خیلی خراب پنجاه لیره از صندوق برداشتم و با خودم گفتم حقوقمو که گرفتم میذارم این سر جاش از اولین حقوقم کسر کنید قربان. صورت رئیس یک دفعه آویزان شد فریاد زنان گفت نه خیر نمیشه نمیتونم چشپی کنم امکان نداره نمیتونم ااقماس کنم اسماعیل بیک اسمیل بیک به خودتون بیاین یه موقعی سر خودم اومده پیش یادم بیناموز کار میکردم من بودم با ماهی چهل لیره حقوق مرتکه رزل با اون که به گارسونها پنجاه لیره انعام میداد واسه خاطر ده لیره منو انداخت زندون امکان نداره نمیشه اسمایل بیک باید مجازات بشی اسمایل بیک مجازات شد به جرم سو استفاده از اعتماد صاحب کارش یک سال زندانی شد مدتی که در زندان بود زن و دخترانش در خانه حوله می دوختند و خرج خودشان را در میآوردند اسمایل بیک از زندان که آزاد شد یک ماشین جوراب بافی دست دوم خرید. و توی یکی از دو اتاق خانهش کارگاه جوراب بافی راه انداخت. بعد یواش یواش کارش گرفت و یک ماشین جوراب بافی شد دوتا. و بعدن سه تا. کار جوراب بافی که گرفت یک ماشین بافندگی هم خرید. زنش و دخترهاش و خودش سخت کار می کردند. کار رفته رفته بزرگتر میشد. در طبقا یک کارگاه بافندگی با پنج ماشین راه انداخت. وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد، کارگاه اسمایل بیک به کارخانه بزرگ با 140 کارگر تبدیل شده بود یک روز صبح کارمندانی که به بخش اداری کارخانه در طبقه سوم آمده بودند از تعجب سر جایشان خوش زد در صندوق باز بود اما پولها را نبرده بودند اسماعیل بیک هنوز از آپارتمان زن دومش که تازگی عقدش کرده بود بیرون نیامده بود به او تلفن کردند وقتی اسمایل بیک با اتومبیل بیوک زرد قناریش به کارخانه رسید پلیسها خیلی وقت بود تحقیق و جستجو را شروع کرده بودند مدیر کارخانه به اسماعیل بیک گزارش داد توی صندوق صد هزار لیره پول بوده صبح حسابدار شمرد سیصد و پنجاه لیره کسری داره بقیه پولها و اوراق و صنعت سر جاشه در صندوق هم باز مونده پلیس هیچ سرنخی به دست نیاورد. کمیسر لباس شخصی که کار تحقیق را عهده داشت دم غروب به اسماعیل بیک گفت جناب آقا فعلا نتونستیم بفهمیم کار کی بوده فقط نگهبان شب اسماعیل بیگ حرف کمیسر را قطع کرد اون دزدی نمیکنه چون مجرده شب و روز توی کارخونه است خرج زیادی نداره تازه هم از ده اومده هنوز چشمو گوش بسته است در این صورت دربان نه کار اونم نیست چون صد و 150 لیره بهش حقوق میدم بعدش میدونم دل دزدی میکنه و درآمدش رو به 400 لیره میرسونه اون فولا نداستیده بین کارگراتون یکی هست که سابقه دوستی داره، شاید کار اون باشه. اون ندزدیده. اگه اون دزدیده بود، همه پولها رو میدزدید و به پنجاه لیره رضایت نمیداد. کمیسر همه کسانی را که مظنون به دزدی بودند، یکی یکی نام برد. اسماعیل بیک هم از همهشان با دلیلی دفاع کرد. آخر سر کمیسر از اسماعیل بیک پرسید: شما خودتون به کی شک دارید، جناب آقا؟ اسماعیل بیک به فکر فرو رفت و پس از مدتی گفت: آه، پیداش کرد. فهمیدم کی پولو دست دیده دوستو پیدا کردم حتما کار خودش بوده کی جناب آقا؟ یه منشی هست توی حسابداری داری کار میکنه زکی کار خودشه اما جناب آقا من ازش بازجویی کردم جوون باشرفیه خیلی همکاریه نکنه نه کار خودشه پولو اون دست دیده نکنه یه وقت اشتباه بکنین غیر ممکنه پولو اون ورداشته اما بهتون میگم اون دزدیده به اون شک دارم دلیل اینکه که بهش شک کرده این چیه؟ چون که... آره... آره کار خودشه صد درصد اون دزدیده صد درصد کار خودشه دلیل و مدرکی هم دارین؟ بله... اون همچه دلیلی من ارز میکنم خدمتتون اولا این آقا روزی ده ساعت کار میکنه جون میکنه اون وقت ماهی صد و لیره مواجب می تو این دور و زمونه هم توی بازار همه دستکم دست کم پونصد لیره کاسبی میکنن. خب، این یارو ندازده کی به اما جناب آقا... نه، نه، به اون شک دارم. مادرش، زنش، ستا بچه، با خودش میشن شیش نفر. با ماهی صد و هشتاد لیره نون خشکم نمیتونه بخوره. خب اگه دی نکنه چجوری اموراتشو بگذرونه شاید هرچی فکر میکنم بیشتر بهش اجاره خونه، کرایه ماشین، خرج کفش و لباس، مگه تا لیره کفاف این مخارج رو میده؟ معلومه که کار اون بوده. اما روزی ده بیست هزار لیره از زیر دستش میگذره. اون وقت حقوق ماهونش 180 لیره است. اصلا شک نکنین کار خودش بوده. کمیسر در برابر اتهامهای سنگین اسمایل بیک از مانشی دفاع میکرد. آخر سر اسمایل بیک مانشی را صدا کرد. مانشی با گردن کج وارد دفتر اسمایل بیک شد بفرمایید بشینین زکی بیک مرد جوان با رخساری کسیف و زرد گونه های فرو رفته و هیکلی استخانی توی مبل مچاله شد رئیس با صدای ملایم و صورتی خندان شمرده شمرده گفت زکی بیک هر خوبی که از دستم برمی در حق شما کتایی نکردم شش ساله که نون و نمکمو میخورین با حقوق صد و لیره تو کارخونم استخدام شدین حقوقتونو کردم صد و هشتاد لیره دیگه چطور خجالت نکشیدین؟ شرم نکردین و از صندوقم 150 لیره دزدیدین؟ از آن وجدان نگرفتین؟ عشق در چشمان زکی به یک حلقه زد گفت حق با شماست قربان من یه بیوجدانی کردم عوضای مالیم خیلی خراب بود 350 لیره از صندوق برداشتم و با خودم گفتم لابد هیچکی متوجه نمیشه قربان حقوق دو ماهم رو بردارین صورت اسمایل به یک دفعه ویزان شد فرگات زنان گفت. نه خیر نمیشه، نمیتونم چشپوشی کنم، امکان نداره، نمیتونم اقماس کنم زکی بیک، زکی بیک، به خودتون بیاین یه موقعی سر خودمم اومده، پیش یه آدم بیناموز کار میکردم منشیش بودم و ماهی نود لیره حقوق میگرفتم بی همه چیز پای قمار چهل چه هزار لیره میباخت، ککشم نمیگذید اون وقت واسه خاطر پنجاه لیره منو انداخت پشت میله ها دوست ها باید م زکی بیک را از آنجا که جلو کمیسر پلیس به گناهش اعتراف کرده بود، همراه دو مأمور به داد سرا فرستادند. اسمایل بیک از فرته عصبانیت داد، میزت فریاد میزد توی اتاقش مدام بالا و پایین می‌رفت. کمیسر برای آرام کردن اسمایل بیک گفت: جناب آقا چرا اینقدر اسبانی میشیر؟ پول زیادی که نبرده ماشاءالله وضعتون که خوبه. تازه به گناهشم که اعتراف کرده. مجازات هم میشه.» اسمایل بیک گفت. درد من اون و پنجاه لیره نیست که دردم اینه که یه رقیب واسه خودم پروروندم خودم سرام اومده میدونم من همین راه ها رو گذروندم یه سال بعد چشمو میکنی میبینی یه میلیونر دیگه تو بازار پیدا شده همین جوریش هم بازار کساد مون وقتی قسمت درآمدمون رو هم این یارو میبره بیا اینم یه رقیب دیگه که واسه خودمون دراشیدیم واسه خاطر اینه که عثوانیامون ارث میخورم آخه چرا دست به همچی کارای خلافی میزنن خب مثل بچه آدم با وجدان کار بکنندی